بسم الله الرحمن الرحيم در درس قبل ما خانديم امر تعريفه متشيزش رو انجلس المشترك تعريفه سدو پنجاچار هو عند الاصوليين لفظ يتناول افرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل او لفظ بضع لمعنيين او اكثر باوضاع متعددة میفرماید مشترک در نزد اصولی ها لفظی است که شامل میشود افراد مختلف الحدود رو افرادی رو که تعریفشون مختلف هست فرق میکنند شاملشون میشه بر سبیل بدل یا لفظی است که وضع شده برای دو معنا یا بیش از دو معنا ولی با وضع های متعدد یعنی مثلا هم همون لفظ وضع شده برای این معنا و دوباره وضع شده برای معنای دیگر باله. اگر نه مثل آم که باشه که با همون یک وضع شامل متعدد باشون باید داستانش باید موقعی ما بگیم کل انسان ها یا الرجال ها؟ اون آم هست اون با یک وضعش همه رو درور میگیره. این با وضع های متعدد و مثال مثالی برش میاره القر کلمه قر جز مشترکات هست جز یا هست؟ چرا؟ فقط وضع للطهر والحیزتی چون هم برای پاکید وضع شده و هم برای حیث و لفظ العینی لفظ عین قر هم ببعنی حیث میشه هم ببعنی پاکید ثلاثة قروء در قرآن مدد جي قرء مفرد شي ولفظ العين فقد وضع عدة معانين منها العين الباصرة وعين الماء والجاسوس والسلعة هم لفظ عين واس شده براي معاري مختلف واس شده براي تششمي كمي بينات واس شده براي تششمي واس شده براي جاسوس والسلعة بس قرآن یک لفظ مشترک هست چون افرادی رو با تعاریف مختلف دربر میگیرد بله. در قسمت عام اگر یادتون بیاد آورده بود که به یک دفعه اونا رو چکار میکرد؟ بدون حاصر دربر میگرفت؟ گرفت ولی با یک وزه؟ ولی با یک اینجا نه با وضع های متعدد خب لا الحكم المشترك اذا ورد لفظ مشترک في نس شرعي ينظر فان كان مشتركا بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحيا شرعي وجب حمله على المعنى الثاني و كان مشتركا بین معنيين او اکثر لغتان وجب حمله على معنى واحد منها بدلیل يدل على هذا می فرماید زمانی که وارد شد یک للفظ مشترک در نص شرعی نگاه کرده میشه. اگر مشترک بود بين یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی شرعی واجب است که؟ ك... بر معنای دوم یعنی بر معنای اصطلاحی شرعیش حمل بشه مثلا کلمه سالات موقعی که در شریعت وارد شد واجب بر کدوم معنا حمل بشه بر معنای لغویش دیگه حمل نشه که دعاءه بلکه بر معنای شرعیش که همین نمازه حمل بشه اما اگر مشترک بود بین دو معنا یا بیش،, بیش از دو معنا لغتا مثلا کلمه العین اونجا دیگه واجب که بدیت معنا حمل بشه با توجه به دلیلی که دلالت بر اون معنا میکنه مثاله قول و تعالی و اقیم الصلاة و اتو الزکات یرادو بلفظ الصلاه المعنی شرعی ل للمعنا اللغوی و هو الدعاء این قول الله تعالی اینجا لفظ صلات که از مشترکات هست در نص وارد شده ولی از اونجا که نص نص شرعی است دیگه به کدوم معنا حملش میکنید به اون معنی استلاحی شرعیش که صلاته یک عبادته و همون عبادت مخصوص نمازه نمعنی لغویش که چیه دعا پس اینجا صلات مشترک بین نماز و دعاه در عربی هم به اون صلات میگن صلات و هم به اون دعا بگن چیه ولون صلات که اقیمو السلاته هذا النباز يا صلاة إصطلاحي شرعي والدعاء هون معنى كي شاست لغويش ما حمل بركوذ معناهش میکنیم شرعي يا لغوي شرعي 156 أموم المشترك وهو ان يطلق اللفظ المشترك ويراد به جميع معانيه التي وضع لها وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال عموم مشترک عموم مشترک چی هست؟ میگه این است که لفظ مشترک اطلاق بشه و مراد از اون تمام اون معانیش باشند که برای اون معناها وضع شده است اصولی ها اختلاف کردند در این مسئله بر چند قول؟ یک المنع من ارادت العمومی فلا یجوز استعمال المشترک الا في معنن واحد و مذهب جمهور الوصولی قول اول علماء این هست که ممنوع هست که عموم ازش اراده بشه ها؟ باید بيكي ازو المعانی مگن چه بشه استعمال بشه پس قول اول این هست که جائز نیست استعمال مشترک مگر در یکی از المعانیش و این مذهب جمهور. مصولی هست کلمی جای استفاده شد از مشترکات بود میگن یکی از المعانی منزور هست یکی از المعانی چه هست دوال جواز گروه دوفمه علماء میگن جایزه که تمام اون معانیش اراده باشند فالمشترک و این کان الاصل فيه اطلاقه على معنا ال... واحد الا انه یجوز ان یراد به كل معانیه دفئة واحده كالعام في شموله عليه خوب دقت کنید نظریه دوم میگه جائز هست اگرچه اصل در اطلاق کردن مشترک این است که بر یک معنا اطلاق بشه ولی جائز است که تمام اون معانیش به یک دفعگی مثل عام مراد باشد در نتیجه در شمولیتش برانچه که دلالت میکند مثل چی باشه؟ مثل آم. مثل آم باشه پس عموم بودن مشترک منظور چه است؟ منظور از عموم بودن مشترک یعنی تمام اون معانی رو که دلالت, دلالت میکند آیا جایزی که در یک دفعه تمام اون معانی رو که دلالت میکند اراده باشد یا نه گروه گفتن ممنوع هستید این آه؟ من هست از اراد اراده کردن عموم یا همه مراد بودنه ام، معناش مثل عموم بر تمام اون معانی که دلالت میکنه گروه دوم دو گفتن که جائز است گروه سوم نظر دیگه دارن الجوازو به فیجوز فیجوزو ان یراد به العموم فی نفی دون الاثبات گروه سوم میگن جائز هست منطحه مطلقانا بل كبا تفصيل مغانشه هاس كجائز هاس فيجوز يراد به الاموم في الناف دون الاثبات كما لو حلف ان لا يكلم موالي فلان فانه يحنث اذا كلم المولى الاعلى والاسفل واذا اوصى بثلث ماله لمواليه بطلة الوصية لجهالة الموسى لأن اسم المولى مشترك بين المعتق والعتيق ولا عموم للمشترك في الإثبات والراجح هو القول اليومور فلا يرادو بالمشتركة إلا بالمشترك إلا أحد معانيه ويعرف المعنى المطلوب بالقرينة المعتبرت دي زرية السيفون بيجي جائزة سكي لفظ مشترك عموم باشه ولی در نافيه ندر إثبات در چي إن توضیحش میده با مثال میگه اگر اومد شخص سوگند خورد که سخن نگوید با موالی فلان شخص با مولاهای فلان شخص خب مولا میدونیم که در زبان عربی هم آزاد کننده رو میگند هم آزاد شونده رو یعنی اونی که میاد بردهی رو آزاد میکنه بهش میگن مولا و اون برده ای که هم آزاد شده میشه میگن چه؟ مولا میگه اگر کسی اومد سوگند یاد کرد که با موالی فلان سخن نگوید میگه اگر اومد سخن گفت با مولای اعلا یعنی با آزاد کننده یا با اسفل اونی که آزاد شده اونی که از دستش تو شده؟ خانس میشه توانی این بحث چه هست؟ بحث نفی هست بحث چه هست؟ اینجا بحث نفی هست سوگند خورده که صحبت مکند یا نکند صحبت نکند پس اینجا میگه جائزه که در هر دو معنا این مولا رو چکار کرد؟ حملش کرد کلمه مولا رو هم بر اون مولای آزاد کننده و هم بر اون مولای چه؟ آزاد شده حملش کرد چون اینجا بحث نفی هست در این مسئله بحث چه هست؟ اما در موارد مثبت نه در موارد مثبت داستان فرق میکنه مثال مثبتشو میخوریم، میگه زمانی که وصیت کرد به یک ثبت مال برای موالیش اگر شخصی وصیت کرد که یک ثبت مال من مال موالی فلانی هست میگه اینجا وصیت چیه؟ باطله چرا؟ چون طرف دو تا مغلا داره آزاد کننده داره و آزاد شده و تعیین نکرده که به کدوم بده و اینجا بحث اثباته بحث چیه لازم میگه اینجا دیگه جایز نیست پس مراد از لفظ مشترک در نفع جایز است که اون لفظ مشترک رو به هر به کل معانیش حمل کرد ولی در بحث نفع اما در بحث اثبات جایز نیست از اونجایی که جایز نیست و جهالت وجود داره میگه وسیعتش باطل میشه این مثال قشنگی بود چرا وسیعتش باطله؟ چون اونی که وسیعت کرده که مالا مالش باشه تعیینش نکرده که آیا مال آزاد کننده باشه یا مال آزاد شونده و لفظ مولا در عربی مشترک هست بین آزاد کننده و آزاد شونده ولا عمومه للمشترکی فل الاثبات و مشترک هم عمومی در بحث اثبات ندارد این گروه سوم میگند پس در عموم بودن مشترک که آیا به تمام اون معانی که مشترک برشون دلالت میکنه جائز است که اراده بشه تمام اون معانی یا نه سه نظریه وجود داشت جمهور میگفتن ممنوعه گروهی میگفتن جائز است مطلقا و گروهی دیگر در نفی جائز میدونستن و در اثبات جائز اما والراجح هو قول الجمهور فلا یرادو بالمشترکی الا احد معانی راجح قول جمهوره میگه مراد نمیشه از مشترک مگر یکی از معانیش پس نباید مراد بشه از مشترک مگر یکی از اون معناهایی که براش وضع شده که جمهور اینو میگند و يعرف المعنه المطلوب بالقرینه المعتبره میگه اون معنای مطلوب هم با قرینه های دارای اعتبار دانسته میشه معنی مطلوب که آیا مثلا کلمه ی عین در این جمله کدومی که از معنیهاش مورد نظر بوده است با قرینه چی میشه؟ دانسته میشه والا مثلا یک جای اومده عین. ها؟ از مشترکات معنیه های مختلفی داره میگه با به قرینه معتبر دانسته میشه که اینجا عین کدوم معناش هست